برای آخرین بار از خودت بپرس اینجا توی پاساژ گلستان چه میکنی هر پاساژ اقیانوسی است و خیابانهای شهر هایی بزرگند که آخرش به پاساژها میرسند ی رودها به اقیانوس میرسند من با قایقی سوراخ و سطح اقیانوس چه میکنم زد اس به سرام و پرتو پلا میگویم ندا ویترین درمانیت دارد جواب میدهد ویترین درمانی مثل آب درمانی است باید اول بدن و بعد سرت توی آفرو برود و بعد با سر بروید توی این ویترین ها. شب میآیم و همه این بودها رو می دزدم و میبرم گمرک به مالخرها میفروشم. فروشم پاهای تو که اندازه پاهای من یخ نکردند نده جرعت داری فقط یک بار ما لمس کن به زیر صفر می رسی. صفر نه، زیر صفر من دونوی تو هستم اما تو مافیای بهتری بودی هوش منفی ریاضیات پایه دانشگاه تهران سختگیر است ترتیب وقای مهم و است بازی مافیا تمام می شود لیلا جاهد رو می کند به ندا و میگوید مافیا باید هوای مافیا را داشته باشد شب یلاست آژان سختگیر سخت گیر می من می رسانمت. یک لحظه یادت میآید که توی جریان بازی نگاه ندا به حامد بود و نگاه حامد به لیلا و نگاه تو و لیلا به ندا و بقیه هم کور بده بغلی بغلی بگیر چی رو بگیرم نگاه را بگیر و رد کن برود نفر آخر باید نگاه را در هوا بقاپد و توی جیب هاش قایم کند نگاه که کم علاکی نیست و دارد برای خودش آن هم نگاهی که ذری از احترام و اشق و خاطر و درد همه را در خودش دارد پسر چه نگاهی می شود این نگاهی که در هوا سرگردان است باید مثل بچه هایی که با تور دنبال پروانه ها می دوند به و نگاه را توی تور بیندازی آن وقت نگاه اهلی تر می شود و فقط برای تو بالا پروانه می کند ندا شب یلده را ول کن چرا امشب نگاه هم نمی کنی؟ چرا جلوتر از من راه می گلستان جای محشری برای پیاده روی دو نفر است هنوز طبقه دوم را سرسری هم نگشته ایم. من چه گناهی کردم که تو از من شما را, را خواستی؟ از است. من که صد سال جرأت نمیکردم کردم بگذارم و شماره را بدهم یا از تو شماره بگیرم. یادت رفته؟ من یادت می آورم. لیلا گفت می رساندت. به من هم گفت ظرفهایی که برای شام آورده سنگین و بد دست هست کمکش می کنم تا درماشین ببرمشان. من قابلمه به دست توی پله ها جلوتر از تو و لیلا پایین می آمدم. چراخ های پاشتی آتلیه روشن مانده بود. با خودم گفتم یادم باشد وقتی برمیگردم به نجات در مرتب کردن خانه کمک کنم. چراخ های آتلیه رو هم خاموش کنم. لیلا در رو باز کرد و گفت توی خیابان سیاسه بوم جا نبود. نزدیک میدان فرهنگ پارک کردم. گفتم جا بهتر از آن نبود؟ میرفتید بالاتر بغل گوشه کلانتری؟ رفتیم و رفتیم تا به ماشین لیلا رسیدیم. ماشین جرویچ چسبانده بود به سپر عقب پراید لیلا. لیلا گفت درآوردن این ماشین از پارک کار من نیست نفسم میگیرد زحمت این هم افتاد گردن تو سامان گفتم این چه حرفی است قبلا ها را گذاشتم توی پیاده رو و سویچ را از جاهد گرفتم تو داشتی منو لیلا رو برانداز میکردی پراید هاچبک را با چند فرمان و عقب جلو کردن و عرق ریختن از پارک درآوردم تو گفتی مرسی آقای درایور جاهد حالا پشت فرمان نشسته بود گفتم لیلا جان در صندوق عقب رو می‌زنی وسایل رو بگذارم لیلا که در صندوق عقب را زد قابلمه و مابقی وسایل رو از روی زمین بلند کردم و گذاشتم توی صندوق در صندوق بالا بود تو آمدی ایستادی کنار من جاهد ما رو نمیدید. گوشیت رو از جیب در ادراوردی و گفتی 0912 خب بقیه‌اش با خودم گفتم صبر کنم ببینم ندا شماره من رو می‌خواد یک لحظه باگذار به شانه هم دست بزنم. انگاری فرشتم برگشته؟ شماره هم را دادم و تو گفتی سر فرصت به زنگ میزنم. گفتم منتظرم. در صندوق را بستم و با تو دست دادم و کمی هم فشار دادم. به شوخی گفتی آی رفتم پیش جاهد تا خداحافظی کنم. جاهد من را بوسید و گفت ممنون پسرم بابت همه چیز. من گفتم بابت هیچ چیز. راستی زفتتون رو را که می خواهید عوض کنید لیلا گفت به همین زودی زفت هم که دست خودت را میبوسد تو و لیلا سوار بر پراید سبز از من دور میشدید با خودم گفتم حتما توی ماشین برایم میسکال میاندازی تا من هم شمارت را داشته باشم داشتم اعتراف ها و ها و جاک هایی که میخواستم برات تعریف کنم فکر میکردم سپیده همیشه میگفت پسر باید بامزه باشد من داشتم به بامزدگی فکر می کردم و اینکه تو چه حرفهایی را بامزه می دانی و به چه چیزهایی نزدیکتری. مهندسی؟ باشد. جوری حرف می زنم که فکر کنی مهندسم. شوخی مهندسی؟ <تصح> انگلیسی؟ اصلا من از سالها نیویورک بودم. نیویورک تهران. شهرک اکباتان. تو حالا حالا ها نباید بفهمی هر دو دومان اکباتانی بوده ایم. فرشته ها روی ها نشسته بودند بخت آدم در شب یلا عوض می شود ستاره قبلیت می میرد و ستاره جدید به دنیا میآید. آید فرشتم یواشکی آمده بود و در گوشه تو گفته بود شماره موبایلش را بگیر ببین چه پسر است. و تو حرف فرشته را به حس مبهمی رب داده بودی که درست در همان دقیقه توی قلبت جوانه زده بود همه فکر می کنن حسی مبهم آدم ها را به هم نزدیک می کنن. ولی نمی که کارکار کار فرشته هاست. خود خودت؟ دوازده شب بعد از شب یلدا؟ دیشب شماره ناشناس روی گوشی افتاد مگر خط من چقدر زنگ خور دارد حتما خودش است. تلپاتی چند هزار متری هم جواب داده است. تلپاتی اسم مستعار جدید فرشته هاست فرشته ها این دور و زمانه مجبورن با اسمای مستعار همه جا حاضر شوند. <تصفيق> ندا بود سلام سلام گل پسر آرتیست آرتیست؟ حالا کجاش رو دیده ای؟ آرتیست بعد از اینت می شوم بند که روی نخهای نامرئی ابریشمی که دور خودت تنیده ای راه می رود و گره نخها را یکی یکی باز می کند که چهار سال آزگار است خواب این جاده ابریشم ای را می ردپایش را روی تند احساس کن و مثل یک پلیس خوب درست مثل شب مهمانی سر بده دست مسیر را تا رسیدن به ملکه خاکستری پی بگیر. دیشب که زنگ زدی خیلی با هم حرف زدیم خندیدیم به خنده های هم و به حرفهای هم خندیدیم. مسخروازی خودجوش از مسخروازی های فکر شده بهترند. حرفها باید خودشان بیایند. اگر بپرسی که نمی‌پرسی چه مرگم است میگویم. مرگم این است که امشب مثل دیشب حرفها خودشان خود به خود نمیآیند. واج میشوند می میشوند می و درست یک هوا بیرونتر از دندانها قرار میگیرند ولی بیرون نمیپرند سقوط آزاد مسوت ها لغو می شود سقوط آزاد همیشه خطرناک است مخصوصا اگر بدون تناب و کمربند ایمنی باشد حرفهایی که به خاطرات عاشقی مربوط میشوند این کمربند را ندارند خطرناکند قاتل بالقوند با جان خودشان و دیگران بازی می کنند ندا دیگر نمیخواهم با تو حرف بزنم میخواهم همان لاک پشت جوان ترسو بشوم که با کوچکترین ناملایمتی توی لاک خودش فرو میرود می دانستی لاک پشت وقتی سر از تخم در میآورند به حکم غریزه دست جمعی به سمت اقیانوس حرکت میکنند حتما توی های حیات وحش چهار چهار راهپیمایی دست جمعی لاک پشت ها را ای قبلا که بهت گفتم پاساشا اقیانوسند و خیابان ها رودخانه رافی فکر می کنم این آدمهای جفت که جلوی چشم ما و پشت سر ما توی گلستان راه میروند و ویترین ها را تماشا می کنند و رؤیای جهانیشان را می بینند. مثل من لاکپشت های جوان ترسو هستند یا نه راه پیمایی لاکپشت های ترسو در این فصل سرد در جستجوی یا های گرم کرم ابریشم بوت و توت را فراموش کن کاترپیلار فروش فوق العاده نگذاشته است اصلا بعید از کاترپیلار بوت ساق بلند زنانه داشته باشد. پنج ماه دیگر تهران لبریز از برک های توت شروع می شود. شهرک اکباتان من را صدا میزند باید به خانه برگردم مادرم زود می خوابد و من دست کلیدم را جا گذاشتم. موبایلم از چند دقیقه پیش خاموش است. خاموش خاموش. کاشکی برق گلستان برود و تو از ترس جیغ بکشی. آن وقت حال این لاک ترسو را بهتر میفهمی. پس پیلت بیرون میایی. برای ساق پای کوچک لرزان تو که شلوار لیوائز پوشیده یک جفت بود از پوست مارهای نیشدار آرزو می مار براق مار آبی. مارهای آبی دشمن لاک ها هستند. یادم باشه توی نت بگردم و درباره این دشمن بیشتر بخونم. زندگی بدون دشمن ارزش زندگی نداره. من با دشمنی نیمای شما قد کشیدم و بزرگ شدم و حالا دشمنی تو. ترتیب وقای مهم و بده هیست داشت قروب می شد. اصر دیروز پشت میز مینی لب نشسته بودم و عکسهایی که از دستگاه بیرون می نگاه می کردم. صدقای روزنامه همشهری را نیمه تمام گذاشته بودم. دلم میخواست بروم توی بالکن. مثل وقتهایی که نجات توی بالکن سیگار میکشد و من از پنجره طبقه پایین خاکسترها را که توی کوچه میریزد میبینم از یخچال یک نق سیگار از پاکت سیگار نجات برداشتم همیشه دوست داشتم صادوکهای روزنامه همشری را رو حل کنم ولی دیروز اصر حتی نمیتوانستم یک عدد هم توش بگذارم باد میامد. از شیشه بالایی پنجره اتلیه که نمیدانم چجوری شکسته بود سوز سردی سیگار را مچاله کردم و انداختم توی سطل آشغال سرمایه زمستان داشت مثل یک دلقک توی فضای اتلیه شلنگ تخته میانداخت راستی که سرمایه دیماه دست کمی از سیرک ایران و ایتالیا ندارد باید از انباری کنار توالت فرنگی یک تکه مقوا گیر می آوردم و میچسپاندم روی سوراخ شیشه تا بعدم فکری براش بکنم میخواستم آن سریه عکسها که از لب آمدن بیرون بروم بالا و توی کاناپه جلوی شومینه فرو بروم گوشیم را رو روی پیشخان شمینه بگذارم و عین افسردهها ها بهش خیره بشوم. و تا زنگ نخورده و به خاطر ویبره دور خودش نچرخیده ازش چشم بر ندارم افسرده عین زندانی های سلول انفرادی صفحه دیماه تقویم آتلیه را با مداد نوکی هفته خط زدم همان مداد نکی که میخواستم باهاش و حل کنم و بین انگشتم جا جامانده بود دوازده روز گذشته ندا تا حالا باید زنگ میزده نکند مشکلی چیزی پیش آمده، نکند شب مهمانی مست بودم و شماره رو اشتباهی به ندا دادم، بحیده است، بحید بود، فرشته از روی شانم پریده بود تا نشانی ندا را پیدا کند، اما توی شلوغی و هوای وارونه زمستان تهران گم شده بود و نتوانسته بود به شانه هم حاصله رسیدگی به سیرک ایران و ایتالیا را نداشتم. بهتر بود سرما و سوز سرد به همان منوال قبلی به جولانشان ادامه دهند. من به کاناپ احتیاج داشتم و به گرما که از رک هایم بالا برود به چشم دوختم به پیشخان شمینه هم احتیاج داشتم. خیلی چیزها هست که باید خودت به تنهایی حلا فصلشان کنی. دوست داشتم در آتلیا را محکم بکوبم و بروم شهرک؟ و شرخی قرمزم را از انباری بردارم و روغنکاریش کنم و با سرعت تمام از تهران دور شوم و فرار کنم از همه چیزهایی که خیلی خیلی بزرگتر از من بودند و خارج از اختیار من. گوشیم را در آتلیه جا میگذاشتم و میرفتم نباید هیچ رد پایی بر جا می‌ماند. باید محو میشدم شبح سرگردان. میتوانستم آتلیه عکاسی ملکه خاکستری را که این همه مدیونش بودم، طی جنونی آنی به آتش بکشم. بنزین توی انباری توالت فرنگی بود فقط کافی بود بنزین را به در و دیوار بپاشم و آن همه قابع چوبی و کاغذ دیواری شمعی چان میدادند برای آتش بازی سیرک ایران و ایتالیا به حسن خطامی ویژه احتیاج داشت آتش بازی همه شهرهای بزرگ دنیا بالاخره یک روز در آتش می سوزند. جهان می سوزند. بطلس قهوه‌ای رنگ جهان باستان به دیوار پشت مینی لب چسبیده بود. جهان میزوخت. من امپراتور دیوانه ای میشدم که ملکه خاکستریاش را به آتش میکشید. از خاکستر به آتش. از میوه به ریشه. روند برعکس همه چیز. مگر نداهمی نبود. خاکستر قدیمی بود و حالا داشت. سراپ آتش میشد. آتش بازی می شود. لام از سب زنگ بزن روی کناپه سرمهی نشسته بودم گرما از انگشت های پا اول به زانوها و بعد بالاتنه و سرم می خزید. پوستم داشت مور مور می شود. موبایل روی پیشخوان چرخید از جام پریدم فرشته به شانم برگشته بود فرشته از گم شدن در شرک گریخته بود ندا بند چپ کودش را آزاد می کند و از سمت راست کوله را میآورد جلوی سینش مانتوی بادم جانی. کوله ی صورتی از جیب جیوردانو آیپادش را بیرون می کشد سیمهای آیپاد به هم گره خوردند ندا اجالهی برای باز کردن سیمها ندارد آیپاد را روشن می کند و لابد می رود به جایی که همش توی پاساش به آنجا فکر می کرده آنجا کجاست؟ دیزنیلند؟ سرزمین عجایب سرزمینی که مردهاش با یک نگاه عاشق میشوند و زنهاش در چشمهها تن و بدن میشویند بریز دوری مزخرفات را ندا فقط دارد سیمهای آیپادش را باز میکند آیپاد را که توی گوشت میگذاری صداهای مزاحم را نمیشنوی صداهای مزاحم جاشان را به ریتم و تمپوی هماهنگ میدهند تصاویر مزاحم را هم نمیبینی این همان بلیت سرزمین عجایب بلیت تماشای تصویر مخشوش این همه آدم که با ولع خریدن و پوشیدن و دور ریختن و دوباره پوشیدن در گلستان راه میروند. تصویر لاک پشت ترسوی بغل دستیت که اگر حرف نزنی او هم برای همیشه خفه می شود و بهت نمی‌گوید در این دوازده روز چی کشیده و تا کجاها که نرفته. رفته تا اعماق گودترین جای اوگیانوس ها. گودال ماریان گودان ماریان باید جای وسط اقیانوس آرام باشد اما اقیانوس گلستان آرام نیست شب تاریک است گلستان روشن است خیابان سرد است و گلستان گرم میروم نزدیکتر و بازون بی اختیار به شانه ندا میگیرد. گیرد ندا بی اعتناست صدای آهنگ از فان توی گوش ندا بیرون میآید از شال فیروزهایش می گذرد و گنگ و مبهم به گوش من می رسد باستکی می شنوم بدون بلیط دارم به سرزمین عجایب می روم مسافر قاچاقی کشتی وسط اقیانوس شلوق آرام ناخدای این کشتی کیست؟ دقت می کنم. صدای آیپادت رو بیشتر می کنی؟ فن چپی را میدهی به من؟ نگران نباش سیمهایش به اندازه کافی بلند است میدانی چند میلیون نفر در دنیا موزیک گوش می دهند و رؤیای جهانی می بینند؟ خیابانها و پاساش های دنیا پر است از مردها و زنهایی که دوتایی با هم آیپاد گوش میدهند ناخدای این کشتی کیست؟ به گمانم راجر واترز است مهمان ناخواندهٔ گلستان همشهریان عزیز گلستان امروز مهمانی ویژه دارد پینگ فلوید اما خودمانیم ندا تو را چه به هیو خندم میگیرد وقتی صدای تو یدرویستند وی فال در گوش می تو میپیچد همزمان آبروی چند ساله سید بر تو راجرواز را میبری اصلا نجات سر کرستان به شما گفته تو گداری یعنی چی و فال یعنی چی شرط میبندم یادتان نداده فال یعنی بدن سرمازده علاق پشتی که به آبهای اقیانوس منجمد شمالی عادت ندارد در واقع به آب‌های منجمد حساسیت دارد و آب دماغش راه می آن یکی را که اصلا فکرش را هم نکن. تو شوخی نیست در که این کلمه به چندین مرحله ریاضت نیاز دارد. تو نمی دانی فالینی چی و میخوای از توگدر سردر سر در بیاوری؟ <تصفيق> بگذار برایت یک مثال بزنم. یک مردم آزار شماره را تصادفی میگیرد و جای حرف زدن توی گوشی فوت میکند. و بعد گوشی را قطع می کند. بند خدای آنور خطی گوشی را هنوز نگه داشته و میگوید؟ Out there in the cold. Can you hear me? و آخرش هم همین تو رو اینها را میگوید. راجر واترز حتما سردش بوده وقتی این ترانه را مینوشته. حتما داشته با دختری در مرکز خرید بزرگ لندن راه میرفته و دختره هیچی نمیشنیده. سخت است. حس و حالت را میفهمم راجر. بیرون به چه جوری از خدا. ولی ما این کشتی را به سلامت به ساحل می رسانیم. ندا اینقدر توی رؤیای جهانیش فرو رفته که صدای زنگ خوردن مکرر گوشیاش را نمیشنود به شانه ندا میزنم. ندا به خودش میآید میگویم موبایلت از توی کول زنگ می زند صدام را نمیشنود سیم ولو آیپاد را می تا ندا صدام را بشنود بلند و شمرده می گویم موبایلت زنگ می آها بند کوله را به همه شیوه قبلی آزاد می کند و موبایلش را با عجله بر می و می گوید. سلام مامان سلام من رو هم به مامانت برسم بگو ممنون که تماس گرفته ممنون مامان ندا ممنون وزارت ارتباطات و فناوری ممنون ساعت و 17 دقیقه پس دست خدا از آستین اپراتور تلفن همراه هم بیرون می آید کاش که مامان ندا به ندا بگوید حال پدرت خیلی بد شده دخترم سود بیا خانه ندا، نمیبینی مادرت نگران است؟ زود برو خانه، از این باغ بی درخت بیرون برو گلستان سهم من یکی است نکنه داری این چند متر مربع را هم از من بگیری نمیبینی دارم تکه تکه هایم را از روی زمین جمع می بگو خدا حافظ الان می آگم. و گوش را قط کن سامان من باید بروم، آزای خانه به هم ریخته به هم ریختگی عالی است، من عاشق به هم ریختگی هم. آشق دوایی پدر مادرها و چشمهای گریان بچه ها که دوایی پدر مادرها را میبینند. چه بد؟ برویم بیرون برای دربست بگیرم که زودتر برسیم. دربست! گلستان هرمانم. هرم. موقتا تن خداحافظ. این دختره را که سوار ماشین کنم، دوباره برمیگردم پیش تو و با هم خلوت میکنیم. با ندا میرویم آن دست خیابان ایران زمین. حالا این منم که جلوتر از ندا راه میراویم. ندا دارد اس میزند. جلوی یکی از این سمندهای زرد که آنتن رادیوشان دو برابر بر طول ماشین است میگیرم و میگویم: "در بست." سمند ترمز میزند. ندا بیان که مقصد را بگوید، در عقب را باز می‌کند و سوار می‌شود. صدای رسیدن اس گوشی هم را میشنوم. نمی خانمش. در عوض با یک خداحافظی که توی زربال مسائل ها به آن سرخ نگه داشتن صورت با سیلی میگویند، از ندا جدا میشوم. این دست خیابان یادم میآید برایم MS آمده با خودم میگویم حتما از این MS های بانک هاست. نرخ سود سپورده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از جیب بغل پالتو گوشی را درمیآورم این دیگر چه پاسی مسخره ای است نداست نوشته ببخش و خدا نگهدار حالا دیگر اشکاری ندارد پالام گلی بشود. روم و روی جدول پیاده رو مینشنم کاشکی همین الان یک سانتافه سیاه پارک کند و آب توی این چاله را روی سر و صورتم هم بباشد.